بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه سلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما ترمنا براهين و ادله ای که ما را به خداوند متعال میرسونه و نشانگر و نمایانگر وجود خداوند تصر گذاشتیم بحث خص و احساس و بحث ادله عقلی و ادله نقلی از قران و سنت اقوال نمیدونم مذاهب یا اقوال فیلسوفان قدیم و جدید اعترافاتی که همه داشتن از عقلای ادیان پیشین و یا اممای پیشین و همچنین امت امت خودمون اینها همه داشتیم ما میرتیم به بحث فطرت آخرین مبحث بحث ادله پی بردن به وجود الله جل شانه فطرت ما قبل از این وارد مبحث فترت بشیم به اینکه این که عمق این مطلب خیلی زیاده و اختلافات درش خیلی شدیده ما باید اول بارد از لحاظ لغوی و اصطلاحی کلمه فترق رو مشکافی بکنیم اقوال و لما و نبی جنم آیاتی که در قرآن آمده باید مشکافی بکنیم بیاییم ببینیم که به چه معای در قرآن و سنت آمده در اشعار عرب در لغت عربی علمات چی گفتن پیرامون بحث فترت؟ فترت اصل وزن فترت بر وزن ساله و حروف اصلی این کلمت تحرفه فا و طا و را فطره. و خود کلمه فطرا بر چهار تا معنی اصلی در لغت عربی میچرده که در قرآنم اومده بر حرف چار یا برسه معنوه از این چور معنوه لغایی در قرآن مدرد ورشید اولین معنو فطره با فتح و فتح فا فطره ای شقه به معنای اشتقاق, وشكاف. اشتقاق وشكاف. و شکاف اشتقاق و یا شکاف و جمعشم فطوره یعنی شقوق و شکافها فطور فطره یا صور فطوره و شواهدش در قرآن خیلی زیاده که من بهش تا اشاره میکنم. اول خداوند در قرآن یه تکاد السماوات ویت من فوقهن نه. چه آیه پنج، آیه شورا، آیه پنج، آیه, پنج آیه پنج شورا، آیه پنج سریه شورا. شورا. تکاد السماوات ویت من فوقهن؟ نگه آسمان ها آسمان ها دارن چی؟ شکاف فرمی دارن حالا از عظمت بحث آسمان ها به همچین فرمودی خدا من فرج هل حل من فطور آیا شقوقی آیا شکافی نگاه آسمون ها بکن آیا شکافی در این ها میبینی؟ خلل نقصی عیبی درشون بینی؟ آیا عیبی ای در این آسمان ها هست؟ همشینه خداوند میگه السماء انفطرت. مختی که آسمان ها منفطر شدن، آیه انفتار یک، آیه قبلی خب سه ملک بود. السماء انفطرت آیه انشقاک. و الحمد لله در بحث معجزات الهی گفته میشه که از این آیه استنبات میشه اینه که پدیده آسمان ها و زمین ها به هنگام وجودشون با یک انفجاری بوده که اشتفاخ ایجاد میشه و انفجار ایجاد میشه و خود به خود این آسمانها ها و زمین ها به وجود میان که خداوند در این آیه بهش اشاره میکنه. این ما بحث اجازه علمی قرآن رو نداریم اینجا. اینجا فقط معنای معنی دو قبی اشاره میکنیم از احادیث هم داریم که رسول الله صلی الله علیه و وسلم میشه از نماز شبش که علی يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتفطر اي تتشقق قدمش یعنی پاهاش شقشق یا شکاف شکاف برمی داشت از بس که می ایستادن پاهاش شکاف برمی داشت و بر پاهاش درش شیاری می از اون سنگینی جسمش که روی پاهاش فشار آورده این هم حدیث در بخاری و مسلمه پس معنای از, از اولیش که معنای اصلی کلمه فترها هست و در لغت عربی زیاد به کار بکوه برده میشه فطره به معنای شقه معنای شکاف معنای دوم به معنای ابتدا یا اختراع یا ابداع و یا خلق و ایجاد و نشأت. ابتدا اختراع اختراع خلق خلق ایجاد و نشأت. هذا من القرآن ذي ياضع فعل الله جل شأنه قل أغير الله أستخذ وليا فاطر السماوات فاطر السماوات فاطر السماوات الخالق السماوات قل أغير الله أستخذ وليا أيضا من غير القدرة بفرسام كسي كآثى منهارا آفري كسي كآثى منهارا آفري قد ابن عباس عباد سأتحسيركم هذا دارين آيات ميكم من كلم يفترارا نمی دونستم تا اینکه دو تا اعرابی دیدم که دعوا میکنن سر یک کلمه این میگه انا فطرته ها این میگه انا فطرته ها میگه من اون رو کلا میگه من ایجادش کردم این میگه من ایجادش کردم ای میگه از اونجا فهمیدم که معنای فطرات معنای چیه معنای ایجاد کردن و خلق کردن و درست کردن میاد فطر السموات آیه انعام 14 آیه 14 سوره انعام و همشي نبكر الله جل شن در سورة يهود آيوة إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري فدرسي كأجر من دست كسيس كفطرني أي خلقني كسي كمنا إيجاد كهس هل سيچه إيجاد كهس ديبقى معنى خير معنى شكاف ديبقى نمياد كسي كمنا على الذى فطرني أي الذى خلقني يعني خلق واضح سريحة و آيه 51 سوره اسراء هم خداوند چی این میفرمایند من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره وللذي فطركم اول مره اي خلقتكم اول مره كزيک شما را ایجاد کرده بود داریم السماوات السماوات و ده الحديث النبوي دارين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمان وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض وجهت حديثا ثاني مثل حديث ابن ابي للذي فطر السماوات وخلق السماوات والأرض. معنى دوم فطر معناه ايه دوم قبولي قبول کردن و پذیرفت هست خدا من در قرآن چی میفرمایند فرماین و منفض به منفض به اشاره هست که خدا مند میکنه به اینکه آسمون ها قبول کردن اون چیزی که مقتضای خلقشون بود عوامر خدا در صورت خدا را قبول از و منفض قرآن به با دستور خدا بند خلقشون و اون چیزی که ایجاب خلقشون می خود همینی رفتن منم میاد در لغت عربی آخرین معنا که در لغت عربی اومده الفطر و کسر فا و سکون الفطر یا الفطر بعد الفطر یا الفطر, الفطر. الفطر. الفطر. الفطر. به چیزی گفته میشه که ابتداش خیلی نزدیک باشه یعنی چیزی که سری به وجود بیاد مثلا به شیری که تازه دوشیده میشه از گاو بهش میگن چی؟ پوتر و مثلا در باره حیث همین خرمایی که با آرد ساخته میشه معمولا خودمون داره با و به صرف میشه، شینگال. حیث در مدینه زیاده صفرهای، صفرهایی که ما داشتیم دوشنبه و پنجشنبه، این حیث همیشه هست، و حیث مدینه معروفه، یک روغنی و یک جهزابی و یک تعمیر شیر نیازه خودش داره. خودشان با رتب و قرمز مدنی. خب، حالا لبتون آب نندازیم داریم، انشالله رسید اونجا حتما دوشنبه سر صفری هفته نام، صفری افکاری، انشالله بیشینید دوشنبه و پنجشنبه. و ببینید این حیث اونها چه شکلی چنگال اونها را خوشتن سری خود چنگال خودمون خب میگن که حیثون فطیر حیثون فطیر یعنی حیثون طریق حیثیست این چنگالی هست جدید تازه که هر تازه از روی تابه آوردن برای خوردن که اون میچنس فطیر یعنی میچنس حیثون فطیر حیثیست که تازه و تازه پخته شده و تازه رو برای خوردن. حالا معانه دیگری هم داره که علماء مثل راغب اسفحانی اشاره میکنن. این کلن از کتاب های لغت گرفتیم از مقایس لغه و لسان العرب و همچینی موجب الفاظ قرآن راغب اسفحانی و دیگر علماء معانه دیگری هم امام راغب اسفحانی و دیگر علماء اشاره میکنن در کنار بعد از آیات قرآن که مثلا بلخط خود فترت را یا فطور را به معنای اسلام معنی کردند. مثلا در در انتهای غرب الحدیث اگر خونی مثلا جمله این حدیث این مت من لیلتک فانت علی الفطره حدیث در بخاری مسلم فاین مت من لیلتک اگر امشب بمیری با خوندن این چیزهایی که هر سال آیه الکرسی و غیره فانت على الفطره تو بر فتره در زمین بر یعنی بر اسلام به معنای اسلام اومده لیکن این معنا چیه؟ معنای اسلاحی هست نمعنای لغوی و همچنین این معنای سنت اومده در حدیث دسته بخاری و مسلم خمسون من الفتره خمسون من الفتره یعنی پنج چیز از سنته پنج چیز از سنته نه از اسلام و نه هم از اون معانی که داشتی خب این معانی که انشاءالله بازم پیرامونی صحبت خواهیم کرد. نگاه بکنید. ورمه وقتی که بحث میکنن بین فطرت و معانی لغویش بحثم میکنند پیرامون ارتباط این معانی لغوی با عقل انسان. یعنی این فترت و قسمت دیگر عقل. مثل علام معلمی، و دیگر عیمه مثلا اشاره می کنند خوصا علام ابن در کتاب دروت تعالق العقل و نقل نگاه بکنید وقتی که بحث فترت میشه فترت یک چیز یقینی هست که در دونور انسان نهفته افته هست فترت از شما عوض می حالا چه فترت ظاهری و چه فترت قالبیتون و باطنیتون چیزی که ثابت هست در دونور شما دیگه عوض نمیشه و همچنین چیزی رو چشماتون مثلا بلفرد این چیزی ثابت خدا گذاشته. دیگه اون چیز ثابته از مثلا غیر ممکنه مثلا گوش ببینه هر کاری بکنه گوش نمیتونه ببینه و نمیتونه با چشم من بخورید این چیزی که خداوند تفتیرتون کرده خلقش خلقتون کرده بر اون اساس. در بحث تطورت چیزی یقینیات هست که در علم, علم منطق بحث میشه یه چیزی هستی نیاتی که در درون انسان نفته و عقل انسان در مقابلش چیزی هست که قسمتی شاید به و ضروریات باشه و قسمتیش زنیات و گمانیات باشه متاسفانه معفضل و همیه وقتی که بحث از عقل میکنن عقل از فطرت بلاتره در از دونها هیچ اشکال نداره خدا به تعدد افراد زیاد بشه همین اعتقاد این که خدا ستاست لقد کفر الذین قالوا ان الله سالف و ثلاث حتی که عقل عقل نمی پذیره لیکی اینها با عقل خودشون پذیرفتن نپذیرفتن چی چی سبب شده که بپذیرن ما پذیره ارسی و سقرات و فرسد خیقه یک و ستا کردن یک و ستا کردن این مسئله که الان میخوان ما بهش ششاره بکنن در بحث لغوی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 تبدیل به یک ماده دیگری میشه مثلا آهن با مثلا بلفرد با حرارت خیلی زیاد تبدیل مثلا به تلاش بکنی طب. حسن که الان در بحث لغمیش یکم هم نزدیکی هم هست به تغییر و تبدیلی که الان من این فروب را گفتم که بخاطر تقریب ذهنی شما علامه معلمی چین میبیند در کتاب القاعد علیت تصحیح الا تصحيح العقائد القائد لا تصحيح العقائد في مجلس السمجه اما الفكره بها ما يعم الهدايات الفطريه والشعور الفطري والقضايا التي يسميها اهل النظر الضروريات البديهيات هي فكرات صحي كه بحث مشي عن هدايته الفطريه الانسانه باجي على شكل ماده بيرو مياد يريد نقول شي يمرده هدايته الفطريه ضرورته البديهياته درستي باجي على شكل بيرو مياد خود مکیدان میکنه یا جویدان شروع مکیدان میکنه این خداست خداست این هدایت خدا من ضرورت بده یاد میگه و نظر العقل الحادی و اعنی به ما یتسر للامیون و نحوهم ممن لم يعرف الا بالكلام و تاخرت بالقلته میگه به اما العقل انی علم فتریه، علم یکسانی هست بین تمام معاقق آقای و غیر آقای. ولی علم معاقق آرا یکد فروک بین آقای و فترات. علم معاقق علمی که انسان ها دارش مشترک نیستن. انسان ها دارش مشترک نیستن. ما وقتی که از آقای در علم مشاری استفاده داشت میکنیم و استدلال بیش میکنیم منزورمون از اون آقایه. آقایی که به معنای فتراته. چون ما خود آقای در لغت به دو معنی یک به معنای عقل ملکی که عقلی که ملکی انسانه عقلی که ضرورت خص و تشخیص انسانه این چه رنگه؟ سفید این چه رنگی نمیدونم فلانه این سفیده، اون مشکیه، اون قرمزه عقلی نمیتونه به فضیلی که این رنگی دیگر مگه یک مشکل ژنتیکی داشته باشه داشت. درسته؟ پس یک عهده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 اقتصابیه خب اقل دومی اقتصابی قضایی که مثلا منطقی ها و فیلتیف ها اشاره میکنند می حادث و محدث و قدیم و جدید و فلان و فلان اینا که می کنن. آیا اینها ها یا فری اقتصابیه با فکر کردن و فلان و فلان بی نتیجه رسیدن که انسان نیازی هم بهش نداره چون خدا برد. نمیخواد بین بندگانش تفریقی بده میخواد وقتی که خطاب قرار میده خلی عبادی کده و کده همیشه وقتی که بندگان خطاب قرار میده با یک سیغه خیلی ساده که همه در بکنن اونها رو مخاطب قرار میده ولی گفته ای فیلسیفان اردگوه و تقرات و فلا خواسته همه اشخاصه همه اشخاص میتونن بدونن و تشخیص بدن یا فقط خاص دانان رو نمیدونم اونهایی که برفر زبرده شدن در علم ریاضیات و فیزیک و نمیدونم منطقه و اینم نیست که علم خاصه آیا دین خودومن دین خاص و تقسیص دینی که خاص افراج خاصی بشه؟ خیر. حالا این فروغ من گفتم یعنی که شما بین دوافع فتری عقلی و دوافع عقلی اکتسابی تفریح بیدید خرق بذارید چون ما وقتی که تشخیص بدیم بین این دو تا مسئله دیگه خیلی ترجیشه بین خیلی از مسائل برای مراحت و آسوم میشه خب بعد از این مبحث میان به عدلهی که سنت. استدلال کردن در وجود فطرت ادله از قرآن ادله از سنت و ادله از احن چه ادله هست امروز فقط بررسی میکنیم ادله ای که در قرآن آمده چه عدلهی هست و اینکه انسان مفتور فطرت داره چون متاسفانه حتی امروزه ما علمای میبینیم که فطرت را این کار می حالا آیات که با تعبییناتی نکنیم تعبیر در یک و مجاز داری که هر کسی که میخواد عادی ریس با عقل خودش نفزی و را برات بکنه ازش استفاده میکنه حدیث رو به بهانه های یا ابو هرره بحث یا ابو هرره مشکل داشته مثلا ما حدیث حدیث و فلان یا تو من با ابو هرره یا تو به حدیث آره ما حدیث صحیح هستم ما نمیخوایم اماده ان شاء الله به بحث حدیث ابو هرره بیان ببینیم آیا در این آیه در این آیات هم مجالی هست برای اینها که بخواد این آیات رو تعبیر بکنن نگاه بکنید دین خدا من یک مننت است بر سر همه بندگان شما همین حدیثی که در رحمت الله علیه امروز داشتید بحث آداب قضاء حاجت قبل از اون داشتین وقتی که وارد قضاء درفی میشید بگید اللهم این اعوذ بك من الخوف و القبائل بیرون اینکه کفران نمی نمیدونم سلمان اعتراض میشه چون این حدیث نداشتیم میگه اینالا در جاهای دیگه ما داریم سلمان اعتراض میشه یه یهودی اعتراض میکنه میگه دینش دین شما چطوره حتی آداب درجی هم بهتون یاد داده میگه بله حتی بهمون رسول خدا یاد داده که رو قبل حتی حاجت نکنیم و نه پشت قبله دینی اینقدر دقیقه که مسائل غیر مسائل نمیدم قضايا حاجت و درجی رفتار چشمشادس نکرده چطور ریکی خیلی از مسائل مثل بحث فطرته انسان که انسان همه تمامی انسان ها بهش نیاز دارن این مسائل انسان ازشش پوشی بکنه و پیامبر نیاد به, ب... به انسان ها یاد بده و شرحش بده که حالا مثلا بالفرد ما نیاز داشته باشیم که تعبیلش بکنیم برخلاف معنایی که در احادیس اومده یعنی عقلمون این عقلی که ما عقل, عقل نظری که ما داشتیم گفتیم با تصابی با اون نظریات با اون, اون عقلیات وقتی که یکی میخواد فرد اگر ما بگیم انسان مفسوره پس در نتیجه خدا میشه ظالم چون اونهایی که خدا رو پس کافر هستند در درسته هست. خب بر اساس این عقلیات این بدهیات و این عدم ضبط قواعد قضا و قدر و مباحث توحید سبب میشه که چی این آیات رو, رو تعبیل بکنن و حالت رد بکنن اما این خیلی مباحث مهمیه که دین همه این مسائل, مسائل رو تشریح کرده تمام مسائل شرح داده و و کرده و جلوه بره مراجع بده. حالا ما میگم در این آیات، آیات بعضی از آیات صریح و بعضی از آیات به طور غیر مستقیم میاد این مساله را بیان میکنه بحث فطری بودن انسان. از آیات صریح فرمودید الله جل شانه فاقم وجهك للدين حنيفه فاقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها ده تب ديال خلق الله. فطره الله التي فاقم وجهك للدين حنيفه. میگه حنيف کشو خود خاص دین قرار بده فطرت الله التي فطر الناس عليها اون فطرتی که خداوند تمامی مردگان رو اون گذاشته یعنی خاص پیامبر نیست یک چیز است دافع مشترک بین تمامی انسان ها نه پیامبر نه غیر پیامبر یکی یکین یعنی. فطرت دافع معنوی ذاتی انسانی که چی؟ ضروری اکتسابی نیست و فرقی بین افراد نمی کنه فطره الله التي فطر الناس عليها چیزی که در خداوندر انسان‌ها میشون کرده لا تبدیل لخلق الله و این خلق تبدیل نمیشه عوض نمیشه نمیشه با این چیز مت استفید آبی ببینید یعنی این چیش نمیده که شما عوضش بکنید مگر با گفتم با تغییرهای ژنتیکی یا مثلا بفط با اینا گذاشن اصل این چیز عوض نمیشه این آیه یکی از آیات سریشه در این که ما باید ما باید دستور های خدا را بپذیریم چون پذیرفتن دستورات خداوند با همین اقم وجه هکل الدین یعنی خودت را مستقیم بر دین نگه دار بر اوامر الهی اون فترتی که چی که تأکید میکنه با نسبش فترت الله اللذی اون فترتی که لو با نسب تأکید اومده که لازمه تمامی مخلوقاته که باید باشه یعنی حتی در لغت عربی ببینید و ببینید الله <سؤال> چرا خودم با نس الله التي فطرت نس علیه که باید مفتادا معرفه باش. میاد خودم با تأکید میاد با ثقیه نس میاد فطرت الله التي فطر نس باورد آیه را خاتمه میده لا تبدیل خلق الله دیگه این خلق هم عبد شدنی اینجیست عبد شدنی امنیست پس فطرتی هست در ازله و آیات بعدی شاید ما ببینیم از جمله مثلا ما آیات و احادیثی داریم یا آیاتی داریم در بحث میسان با عهد و, و تأخودی که خدا بنی آدم گرفته چینین داریم حالا اون آیه قبل آیه سی روم بود سوره روم C. آیه الان آیه 172 و 173 سوره 172 سوره و 173 وَإِذْ أخذ رَبُّكَ من بني آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أن تقول يوم القيامة إن كن عن هذا غافلين ويتخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بكذاوند فردند که خداوند فرزندا رو بیرون اهل احل جهنم رو بهشم مشخص میکنه و همه اینها ها اقامات میکنه که کی من کی هستم اقرار میکنن که تو پروردگار ما هستی پس این چیزی که در اصل باطن انسان و اقرار و خداوند در روزی که آدم را خلق کل از انسان ها گرفته چیزی هست که در باطن انسان نورده است. حالا انکارم بکنه چیزی که هست نمیشه عوضش کرد در آیات دیگر داریم. میگه مولانا آیه هفت مائده الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به هم ميثاق ونعتی که خداوند داشت شما گرفته چهدی اسم مجهل یعالم اگر مجهلی که ظلم قدره می کنه که اینجا که به ما الله میگه تذکر یاد اون میثاقی که ما تو شما میگیدید که نه ما میثاقی نداری چه تعهدی ما گرفتید معلوم یا مجور؟ باید معلوم باشه که خدا من ام بکنه ما و ما انجامش بریم اگر نمی شه تکلیف مالاییز و تکلیفی که ما داقتش رو نداریم پس خداوند اینجا تذکر میده و میگه که یاد بیارید اون نعمتی که بهتون دادم و اون عهدی که از از از گرفت از کل تون سمعنا و افقه نه وقتی گفتید که ما میشه و میفذیریم يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان؟ إنه لكم عدو. ألم أعهد؟ هل تتعهد؟ نجربها. يا بني آدم، خصبر عندي خاص. أشخاص خاص يا هم. ومشهد وزنو هم مش ناس. هم الشيطان مش ناس. هم الخلافة مش ناس. خلافة بناء اسمه حاجة في النبوة كرهت أن يتلاعدها أخذ. جناهم خدمهم يدي. سيجار كشيدا ومشروب خوردا وزنا كردا. إنه هم أمي. سورية حديث آية هشت وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا به وتؤمن لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم ميثاق وعهد مذاتون گرفته قبلت إن خلقتم خلقت بشي ميثاق گرفته عهد وطعود گرفته إن ميثاق على آياتي كومده خیلی زيادة على درجاء هاي علت گفتیم اول داشتیم صراحت بحث فطرت دو داشتیم بحث میثاق و عهد سه داریم بحث تذکر مثلا به من به شما میگم میگم ماده به دستت باش که این چای مثلا این چای دستتو میسوزونه درسته چه موقع شما میدونید که این چای هست و داغ دستو میسوزونه میسوزونه که قبلا امتحانشو کرده باشید تذکر بهتون میاد اگر نکته تذکر بدی چون رو نمیدونی در تشخیص میگم مواظب باش دفعه نه بدونی سازانا چی نمیدونی اصلا نمیتونی بپذیری چون نمیدونی چیه مجرد نهیه بدون دلیل درسته بدون تجربه بدون احساس نمیتونیم بپذیریم خب وقتی که خداوند تذکر میده در قرآن از دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اینکه ما میتونیم تشخیص بدیم یا اینکه اگر نمیتونیم تشخیص بدیم که خودمان در حقا مرا کرده که این از اون دوره و خودمان با کمان ازده حتما ما میکنیم و میدونیم که چیه اون چیزی که تذکر به ما میده خاطر همین خداوند در قرآن چی میگه میگه که در سوری غاشیه مثلا آیه بیسی یک فذکر فذکر انما انت مذکر لست علیهم به موسیقی فذکر تذکر تذکر بده تذکر چه باقی میشه؟ گفتیم یه چیز معلوم باشه تذکر داده دا بشه. آلا این تذکرات تذکرات زیاده در قرآن. مثلا قرآن فما لهم عن تذکرت اسم قرآن قرآن یاد میکنیم به عنوان تذکرت معرضی سبحان الله دیروز بسند تو یه چیزی بخرم. بعد اون صاحب مقاضی داشت سهران کتاب سهران رو درست بعد گفتم بهش کتاب داره تو که مطالعه میکنی فلان گفت آره تفسیر خونم همین که تفسیر میکنه آدم میگه نمیتونه غیر مؤمن باشه باید مومن پای پایبند بشه یعنی میگه قران الا خودت میگه تفسیر قران میکنیم، انسان عاد میشه دیگه منو گذاشتم میخواد آدم بشه خدا وقتی که در قرآن تذکر میده میدونه که این کلاخ حفه و میدونه که چی خدا من چیزی دیگه ازش میخواد می‌دونی که تشخیصش سخته میگه شخص عامی یک مغازه داره هم نداره خیلی بیشتر نیست یعنی یک شخص عامی میتونه تشخیص بده این تذکره این تذکرات خدا فقط تذکر جهنمی هست عقابی هست این کارو نکن اون کارو بنان درسته؟ همه تذکرات قراره یه چیزی که بدیهیاته یه چیزی که ضروریاته که تو ریشه انسانم انسانم احساسش رو می‌کنه می‌دونی که یک دستی پشت در دست تا هست میدونه که یک چیزی های نفته شده هست فرشدگانی هست جنی هست یا خداوند در قرآن مثلا این آیه مدتر چلونه داشتی پنج و در همه سولی مدتر کلا اینهو تذکره کلا اینهو تذکره قرآن تذکره هست حالا وجوه این فترتی بودن انسان زیاده این ستایی بود. 4 أو 4 مين مبحثي خدمنا القرآن إشارة ميكو نة كينينه مثلنا بالفعل. بحث بترافق خداعة آمادن درسات ضروريات. بحثي إحدى ضروراتي بيشميات. كي إحدى طوفاني بيشميات. مثل سورة يونس أي بصدق هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة فرحوا بها. که وقتی که سوار که شیش دان و بعد خوشیومات باد جاءتها ریح عارف بده دون بوده فی خانی میاند و جاءهم و جاءهم الموجو من كل مكان و ظنوا انهم خیط بهم دعو الله مخلصین له دین خب این چی شد ها رو اطراف قدامه مشرکاً تو کشتی شدن. شدم باد خوشی میاد باد کفانی میاد دست به طرف خدا بالا میبره وقتی که موجها ها را می بینند و ظنوا انه انهم بهم دعو الله مخلصی خالصانه خدا میخوان له الدين لان ان من هذه لنكونن من الشاكر اگر مرا نجات بدی شاکر میشیم اکرمه که. اصلش در بخاری و مسلمه یک از اکرامات فدان ده بوجه میگه من که مرا کشی یک ما رو گرفت دیگه مشرک ها مشرک ها اجازه نمیدونن چی چه تا مسلمان بشه این که فطرت رو قبول داشته باشه میگه قبول نداشته باشه میگه وقتی که طوفان اومد طوفان اومد میگه که در تا درون خودم نگاه کردم حرف محمد حق گفتم ای خدا خودت برحقی وقت غیر از تو کسی دیگر نی اگر نجاتی بیافتم میرم پیش محمد صلی الله علیه و سلم با اسلام و ابراز میکنم و اعلام میکنه. خب میشه لا اینجا خطر ان کرد با این وجود قوبی با این معانی خبی از لغت عربی از مباحث علم قرآنی آیا میشه تمامی این از علما و این یت سریح را ردش کرد این یت زیاده الله این آیات هم همچری وای مک مضوع البحر بل من چکرون یا دی کسی دیگه غرد خدا نیست که دست بهش بلند بکنید حالا اونم در صورتی که چیز فترت ها منکوش نشده باشه آیه آخرین آیه چند سو هست بود الان فترت ها عوض شده مثلا برفر آدم سوار قایقه بره غرق میشه هی من سوار قایق بودم میرفتیم می می به بنده خیلی موجود چند تا پیردن نشستی بودن بعد شروع کردن گفتن یا الله یا الله نیست که نه الله به دردنی کنه اینجا گفت یا امام رضا یا امام هشتا یا امام مرزت مرتض چرا کیه یادش کرده آیا واقعا نگاه کن اولین چیزی که در دلش اومد اولین چیز اولین که موجود اومد گفت يا الله بعد بیادش اومد که ها نه نه ای چیزهای دیگه هم حت که بهش گفتن که امام رضا قدرت هایی داره اون میتونه نجات بده و فلان و خود یعنی الان اینا میگن ما امام ما رو واسطه قرار دادیم امام نمیشنه ما امام نمیده فلان است در صورتی که اینجا طوری به دنیا دادن اگه در این سختی های قرار بگیرن چی ظلمن انجا مشتکی میگه ظالم انت الاله الا اما اینا نه. مشریکی غیر از خدا دیگه نمیشناسه اینا نه غیر از امام کفی دیگه نمیشناسه حتی خدا رو نمیشناسه خیلی مسائل مسائل ریزی هست که ما میگیم لمس میکنید در دل بحث فترت و عوض شدن فترتا ان شاء الله درس آیندمون متری میدونم که خیلی تنکی روی خودم تنکی هم میکنه از یک قسمتی حتی که بحث پیرامون امام عصر میشه شده دیگه که خدمت آنچنانی نشده. میمونه تخریج حدیثه کل مولود اینوده و درس اویان دامون موفقی کردند انشالله این حدیث که میذنبرید درس اویان دکتر سبحان دکتر سبحان سبحان سبحان